این مجموعه گفتگاه های صوتی به موضوع مبارزه مکتبی دعوتگران را حق اختصاص داده شده است برای پیبردن به حقیقت اسلام و پیراستن آن از بند خرافات و عباطیل مذهبی که همچون پرده ستبری جلوی اسلام رو فرا گرفته و برای تشقیق حق از باطل هیچ میزانی بالاتر از کلام الله نیست احادیث و روایات مجعول با هدف استحمار و استثمار و نیز اشاعه دکانهای دین فروشی و انحراف مردم از مسیر صراط مستقیم توحیدی توسط دشمنان اسلام و بدخواهان مسلمین نشر و ترویج گردیده مسلمین بایسی به ریسمان الله چنگ بندازن و باز اسلام از کانون کلام الله جوشش کنه چرا که تنها با شناخت و مسلح شدن به مفاهیم و موضوعات توحیدی و تعصی از رحنمود های الهی میشه از مکر و دامهای جنود شیطان و صد کنندگان راه الله ام از جباران قدرت حاکمه ملع اشراف مطرفین افراد ایاش و لجام گسیخته و, و بسیاری از روحانیون رهایی یافت چرا که اساس و بنیان دیانت اسلام بر یکتا یکتاپرستی اصوار شده و شرک به الله بزرگترین گناهیه که هرگز از سوی او آمرزیده نمیشه فلیزا رسالت اصلی موهدین در این راستا شناساندن مرز توحید و شرک به انسانها با انایت به تعالیم و ارزشهای توحیدیه آگاه ساختن مردم به حقایق اسلام راستین و بازگشت به تعالیم بنیادی اسلام و مبارزه با خرافات و رد مذاهب باطل و شرکامیز رسالت اصلی موهدینه ما بر این باوریم که جوامع مذهبی به واسطه متروک نمودن کلام الله دوچار عقاید خرافی فاسد گشته و به دنبال بدعتها و اعمالی که منتهی به شرک مطلق گردیده از همین رو باید کوشید تا عقاید و زندگی مردم رو از همه بدعتها پا کرد و برای این پیرایش جهادی بر ضد این بدعتها اعلام کرد و برای احیای اسلام ناب با تمسک بر حدیث الله ریشه خودکاران مذهبی و دکانداران دین رو که هدفشون افساد فرهنگی اسلام و مختوش نمودن دین الهی و مسخ اندیشهای توحیدی رو آغاز کرد بر دعوتگران راه توحید واجبه در جهت القاع اباطیل و خرافات مذهبی که به واسطه ریش دواندن در عمق احساس ذهن و شخصیت جامعه خودشون رو به صورت ارزش بدیهی شده نشون داده و مقبولیت یافتند با طبعیت از کلام الله در بطن این باورها خلال و تردید ایجاد کرده و بنیان پوسیده و خرافی و شرکال و اونو بیش از پیش متزلزل کنند این ضد ارزش ها اگرچه برای اکثریت مردم استهمار شده مقلد به صورت عقاید و احساسات مقدس در اومده و در اونها نوعی تعصب و پایبندی ایجاد کرده ولی برای دستگاه آخوندیزم و اون معنایی به مراتب وسیع از عقیده و ایمان داره و اون منافع عظیم و سرشار مادی و سیاسیه که در جهت تثبیت و تحکیم پایه‌های شیطانی خودشون دین رو ابزار ارتزاق و ستم و خرافه پروری قرار میدن و با تحمیق جماعت مقلد به استثمار و بهره کشی روزافسون اونها میپردازن و با نقاب دروغین اسلام به ترویج عقایت و پوشالی خودشون که نشعت گرفته از افکار مسموم و منجمدی که از ذهن پلید و شیطانی اونها تراوش پیدا میکنه سعی در تخریب و تختعه و مخدوش نمودن دین و نهایتا مسخ های توحیدی و ادالت پخش اسلام رو دارن. به بدین ترتیب نقش اساسی دعوتگران راه توحید چیزی نیستش مگر کوشش و مضاعف در راه ریشهکن کردن ضد عرضش های شده از صحنه اجتماع و از بینش و شخصیت توده های مستضعفی که به دلیل متروک و محجور گذاشتن کلام الله و نیز به واسطه تقلید کورکورانه در دام جعالین ظالین و دجالان مزلین افتادن و در این صورت شاهد احیاء دین الله در بطن جوامی انسانی بوده و ریشه خبیثه دکانداران دین و خود مذهبی نابود میشه و طبیعی در مقابل این دعوت توحیدی خیلی عظیم پاسداران جهل و تعصب ارتجاع و حامیان نظام شرکالود طبقاتی بیستن و هر نوع حرکت توحیدی را با چماغ تکفیر بکوبند. چرا که نیک میدونن اشاعه و نشر اسلام راسین موجد حرکتی عظیم در جهت پار کردن زنجیرهای اسارت و در همشکستن موازع دستگاه ظلمی شرک میشه دعوت کران راه الله بایستی به تصحیح و اصلاح عقاید مردم در پرتو تعالیم الله تعالی هممت گماشده و با آگاهانیدن مردم به آن گمگشتگان و بیخبران رو به حقیقت اسلام راسین راهبر گردیده و اونا رو از ادام محرفین و صد کنندگان راه توحید نجات بدن و دین الله و مستضعفین رو یاری کنند چرا که برای از بین بردن ایدئولوژی شرک و پاسداران حامیانش چاری جز روشنگری دینی و اصلاح آراء و عقاید مردم نیستش اما و قفالین الله حسيبا سوری احزاب آیی سی و نو. کسانی که پیام های الله را ابلاغ می‌کنند و از او می‌ترسند و از هیچ کس جز الله بیم ندارند و الله برای حسابرسی کفایت می‌کند نَقُذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَوُهُ فَإِذَاهُ وَزَاهِقُ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ سوري أنبياء آية هجدة بلکه حق را بر باطل فرو می افکنیم پس آن را در هم میشکند و بناگاه آن نابود می گردد وای بر شما از آنچه چه بس می‌کنید در آخر از اینکه به سخنان بنده پیرامون موضوع مبارزه مکتبی دعوتگران راحق حق گوش کردید کمال تشکر را دارم پروردگارا، بیداری حرکت و اراده را در پرتو فرامین روشنگرخیش بر همه مظلومان و ستمدیدگان انایت فرما یارب چنین باد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته